ولی بله. همانطور که در بخش مشروح اخبار از زبان همکار خوشالهانم بلبل چنگید معترضین به ادام روحانی شیعه عربستانی به سفارت عربستان در نیاوران تهران حمله کردند به همین مناسبت همکار گرامی هم گذارشکر ویژه واید غیرمرکزی خبر به این مکان رفته تا از این حمله گزارشی تهیه کند همکار گرامی بفرمایید که در مکان سفارت چه خبره؟ بله همکار گرامی یکی از اتفاقات جالبی که اینجا افتاد این بود که خیلی خیری شورای اسم خیابون سفارت عربستان رو عوض کرده و الان اسم این خیابون شده خیابون آیت الله نمر همکار گرامی عجب بود خب کلاً همکار گرامی چرا شلوغ این چیز روند درگیری ها اونجا چطور بوده همکار گرامی همکار گرامی دوباره حمله صورت گرفته دفعه اول تعداد حمله کنندگان کن چند بود با نیروی انتظامی دونشون رو عقب بشونه ولی در حمله دوم دیگه تعداد بیشتر بود و نیروی انتظامی هم عقب نشه هم کارو یعنی چی وسط شهر مگه نبوده بر... پلیس هم که این همه نیرو داره اونجا عجیبه اه... هم که دیگه چی داری برامون از حواشی این حمله بگی هم کارو همکار هم کار یکی از جالبی که دیدم میشد مم. علاقه حمله کنندگان به انداختن سلفی با قسمت‌های آتش گرفته یه سفارت بود که خب اه. خیلی پرطرفدار بود این کار همکار عجب یعنی چی مگه اینات معترضین خشمگی نیستن دیگه سلفی انداختنشون چیه آخه همکار گرامی من نیم فهمم والا همکار گرامی اتفاقا چون هایی که من دیدم بعضی خیلی خوشحال و خندان بودن همکار گرامی خب بر اجازه بدید ب... چی شد؟ بله. همکار گرامی خوبی چی شده الو الو همکار گرامی بله. آخه من خوب خود باشه نیست باشم همکار گرامی ادراست من باید برم این برادرا من خواستن چند تا عکس یادگاری با این توخ کیا بگیرم ازشون چی میگی تو خبرنگاری بله. همکار گرامی خیلی سخته عکاس عکاس مجالس سفارتگیری که نیستی که چیکار چی داری می‌کنی الو حالا همه اومده چی همه بجنب شیخ نمر نمی. ای. باز. این سلاشش خاموشه ها مجازه به ال... بیا تو کار بیا تو کار شما نیستی ها ای با اصلای نمیشنه این صدای من ها باید بلشی کنه اصلا با تشکر از شما عزیزان تا اوشب دیگر و برنامه ای دیگر و سفارتگیری ای دیگر خدا هم نگهدار واسه من شده عکاس مجالس به سری خلوچه فکر کنم عروسی مروسی هم میره اینطوری ها شی دیوانست شد